پیوستن هر به حسین علیه السلام و شهادت او امام حسین علیه السلام در این هنگام فریاد زد آیا فریاد رسی نیست که برای خشنودی خدا به فریاد ما برسد؟ آیا دفاع کننده این نیست که از حریم حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نماید؟ هر ابن یزید ریاهی این صدا را شنید نزد عمر سعد آمد به او گفت آیا تو با این مرد امام حسین علیه السلام جنگ می عمر سعد گفت سوگند به خدا آری جنگی که آسان ترین مرحله اش پریدن سرها از بدنها و جدا شدن دستها از پیکرها باشد. هر از عمر سعد گذشت در جای کنار سربازان ایستاد به طوری که لرزه بر اندامش افتاده بود. یکی از نزدیکانش به نام مهاجر ابن اوس به هر گفت سوگند به خدا قیافه و چگونگی حرکات تو مرا به شک انداخته. اگر از من بپرسند شجاعترین مردان کوفه کیست، جز نام تو نام کسی را به زبان نیاورم. بنابراین این لرزش چیست که در تو می نگرم. هر در پاسخ چنین گفت سوگند به خدا من خود را بین دراهی بهشت و دوزخ می نگرم پس سوگند به خدا هیچ چیز را بر بهشت بر نمی گذینم گر چه قطع, قطع و سوزانده گردم سپس سوار بر اسب به سوی خیمه های حسین علیه السلام حرکت کرد دست را بر سلش نهاده بود و می گفت خدایا به سوی تو بازگشت نمودم و توبه کردم توبه مرا بپذی. من دلهای اولیای تو و فرزندان دختر پیامبرت را ترساندم آنگاه به حسین علیه السلام رو نمود و عرض کرد فدایت کردم من همانم که سر راه شما را گرفتم و از بازگشت شما جلوگیری نمودم و ارسه را بر شما تنگ نمودم سوگند به خدا گمان نمی کردم که این مردم تا این حد با تو برخورد کنند. اکنون به سوی خدا بازگشت نموده و توبه کردم آیا خداوند توبه مرا پذیرفته است؟ امام حسین علیه السلام فرمود آری خداوند توبه تو را پذیرفته است از اسب پیاده شو و به سوی ما بیا هر گفت من اگر سوار باشم برای تو بهتر از آن است که پیاده باشم و سرانجام کارم به پیاده شدن است سپس گفت اکنون که من نخستین شخصی بودم که بر تو خروج نمودم به من اجازه بده که نخستین کسی باشم که در پیش رویت کشته شوم تا از کسانی باشم که در قیامت با جدد محمد صلی الله علیه و آله و سلم مصافه کنند معلف گوید منظور هر نخستین کشته آن ساعت است زیرا جماعتی قبل از او به شهادت رسیده بودند امام حسین علیه السلام به هر اجازه داد هر به میدان شتافت و به نیکوترین وجه با دشمن جنگید به طوری که جماعتی از شجاعان و قهرمانان دشمن را کشت سپس به شهادت رسید پیکرش را نزد امام حسین علیه السلام آوردند حسین علیه السلام خاک از صورت پاک می کرد و می فرمود. تو آزاد هستی همان گونه که مادرت تو را هر آزاد نامید تو در دنیا و آخرت آزاد می باشیم جنگ و شهادت بریل پس از هر برهیر ابن خوزیر که مردی زاهد و آبد بود به سوی میدان شتافت. یزید ابن معقل از طرف دشمن به جنگ او آمد. بریر او را به مباهله دعوت کرد بر این اساس که هر کسی که کشته شد بر باطل است. با هم درگیر شدند بریر او را کشت سپس همچنان به جنگ خود با دشمن ادامه داد تا به شهادت رسید. رزوان خدا بر او باد. شهادت وهب ابن حباب کلبی آنگاه وحب ابن حباب کلبی به میدان شتافت و جنگ خوبی کرد و با نهایت تلاش به جهاد با دشمن پرداخت همسر و مادرش در کربلا بودند او نزد آنها بازگشت و گفت ای مادر آیا خشنود شدی یا نه؟ مادر گفت نه خشنود نشدم تا در پیش روی حسین علیه السلام کشته شوی. همسرش به او گفت تو را به خدا با کشته شدنت مرا به فراغت سوگمند نکن ولی مادرش به او گفت از سخن همسرت بگذر و به میدان برو و در رکاب پسر دختر پیامبر نبرد کن تا مشمول شفاعت جدش در روز قیامت گردی و هب به میدان بازگشت و همچنان به نبرد جانانه خود ادامه داد تا دستهایش از بدن جدا گردید در این هنگام همسرش ستون خیمه را به دست گرفت و به سوی شوهرش رفت و گفت پدر و مادرم به فدایت به حمایت از پاکان حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دشمن جنگ کن وهب نزد او آمد تا او را به خیمهها بازگردانید او دامن وهب را گرفت و گفت نه هرگز باز نمیگردم تا در کنارتو کشته شوم امام حسین علیه السلام فرمود خداوند از این دفاعی که از اهل بیتم می‌کنید پاداش خیر به شما عنایت فرماید به سوی بانوان حرم برگرد همسر وهب بازگشت وهب همچنان به جنگ با دشمن ادامه داد تا به شهادت رسید رزوان خدا بر او شهادت مسلم ابن اوسجه سپس مسلم ابن اوسجه رحمت الله علیه به میدان شتاف و تا آخرین توان خود با دشمنان جنگید و در برابر سختی شدید تیرها و زخمهای بلا مقاومت شدید نمود تا اینکه به زمین افتاد هنوز رمقی در بدن داشت امام حسین علیه السلام همراه حبیب مظاهر به بالینش آمدند امام حسین علیه السلام خطاب به او فرمود ای مسلم خدا تو را رحمت کند در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند بعضی پیمان خود را به پایان رساندند و در راه خدا شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند در این هنگام حبیب ابن مظاهر که دوست و همدم و از خیشان مسلم علیه السلام بود صورت خود را به سر مسلم علیه السلام نزدیک کرد و گفت ای مسلم سوگند به خدا این منظره کندن تو را کمی نگرم برایم بسیار سخت است بهشت بر تو مجدباد سپس حبیب گفت اگر این نبود که میدانم پشت سر تو خواهم آمد دوست داشتم هر آنچه در دل داشتی به من وصیت کنی مسلم ابن اوسجه در حالی که اشاره به امام حسین علیه السلام میکرد گفت تو را به یاری این آقا وصیت می کنم در رکابش با دشمنان جنگ کن تا کشته شوی حبیب گفت سفارش تو را به دیده منت دارم و چشم تو را به انجام وصیت روشن خواهم کرد آنگاه روح مسلم علیه السلام به لقا الله پیوست امربن قورته انصاری سپر امام حسین علیه السلام پس از مسلم ابن اوسجه یکی از یاران و مخلصان و دلاوران امام حسین علیه السلام به نام امربن قورته انصاری از امام حسین علیه السلام اجازه رفتن به میدان گرفت امام علیه السلام به او اجازه داد او به میدان شتافت با اشتیاق و شور و شوق به پاداش الهی با دشمن می جنگید. و تا آخرین توان خود جنبازی کرد گروه بسیاری از دشمن را کشت آنچنان استوار و کوشا بود که هر تیری به سوی حسین علیه السلام می‌آمد دستش را سپر آن تیر قرار میداد. و هر شمشیری که به طرف حسین علیه السلام کشیده میشد قلب و جانش را در برابر آن قرار میداد. آنچنان خود را سپر دفاعی جان عزیز حسین علیه السلام قرار داده بود که نمیگذاشت آسیبی به آن حضرت برسد تا اینکه پیکلش پر از زخم شد در این هنگام به امام حسین علیه السلام رو کرد و عاشقانه گفت ای پسر رسول خدا آیا به عهد خود وفا کردم امام حسین علیه السلام فرمود آری تو جلوتر از من در بهشت هستی سلام مرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برسان و به آن حضرت عرض کن که من نیز به دنبال تو خواهم آمد. او آنقدر با دشمن جنگید تا به شهادت رسید. رزوان خدا بر او باد. جان و شهادت جون غلام ابوزر جون غلام سیاه چهره از غلامان آزاد شده ابوزر غفاری قفاری در کنار سپاه امام حسین علیه السلام بود امام علیه السلام به او فرمود به تو اجازه دادم که از اینجا بروی تو برای کسب عافیت و سلامتی همراه ما بودی اینک وضع چنین است خود را در راه ما گرفتار نکن جون گفت ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا من هنگام خوشی و رفاه کاسلیس شما باشم و هنگام سختی و فشار شما را به خودتان واگذارم سوگند به خدا بدنم بدبوست سرشت و اصالت خانوادگیم پس است و چهرم سیاه می باشد بهشت را برایم ارزانی دار تا بوی بدنم بوی خوش گردد و سرشت و شخصیتم شریف و چهرم سفید شود نه به خدا سوگند از شما جدا نگردم تا این خون سیاه من با خونهای شما آمیخته گردد جون پس از این گفتار به میدان رفت و با دشمنان جنگید تا به شهادت رسید شهادت امر نخالد خالد قهرمان شیرمرد سپس امر خالد سیداوی به محضر امام حسین علیه السلام آمد و عرض کرد ای ابا عبدالله الحسین فدایت گردم تصمیم گرفتم که به یاران شهید بپیوندم.» دوست ندارم بمانم و تو را بین زن و بچه ات قریب و تنها بنگرم و بدن کشته تو را ببینم امام حسین علیه السلام فرمود به پیش رو که پس از ساعتی ما نیز به تو میپیوندیم. پیوندیم امر ابن خالد به میدان شتافت و با دشمن جنگید تا به شهادت رسید رزوان خدا برو با موعزه هنزلت ابن سعد و شهادت او یکی از یاران امام حسین علیه السلام هنزلت ابن سعد شبامی از طایفه شبام یکی از تیره های قبیله همدان بود به محضر امام حسین علیه السلام آمد در حالی که جان خود را سپر امام علیه السلام نموده بود تیرها و شمشیرها و نیزه ها را که متوجه امام حسین علیه السلام میشد به جان خود میخرید و صورت و گلویش را سپر امام علیه السلام قرار داده بود او مقابل صف دشمن آمد و آنها را به این آیات قرآن که از زبان مؤمن آل فرعون به حمایت از موسی علیه السلام خطاب به فرعونیان در سوره غافر آمده مخاطب قرار داده و صدا زد ای قوم من من بر شما از روزی همانند روز عذاب اقوام پیشین بیمناکم و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و سمود و کسانی که بعد از آنان بودند از شرک و کفر و می ترسم و خداوند ظلم و ستمی بر بندگارش نمی کند ای قوم من بر شما از روزی که مردم یک دیگر را صدا میزنند و از همدیگر یاری میطلبند و صدایشان به جایی نمیرسد رسد بیمناکم از همان روزی که روی میگردانید و فرار میکنید اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند برای شما نیست ای قوم من حسین علیه السلام را نکشید که اگر او را بکشید بر اثر عذاب الهی بیچاره خواهید شد همانا آن کس که به خدا نسبت دروغ بدهد زیانکار است سپس به امام حسین علیه السلام رو نمود و عرض کرد آیا به سوی پروردگارمان و یاران شهیدمان نرویم امام حسین علیه السلام فرمود برو به سوی مقامی که برای تو بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است می باشد. به سوی مقامی که فنانا پذیر است. هنزله به میدان شتاف و با شجاعتی چشمگیر و قهرمانان جنگید و در برابر سختی های جنگ مقاومت استوار نمود تا به شهادت رسید. رزوان خدا بر او باد. اقامه نماز ظهر در روز آشورا وقت نماز ظهر فرا رسید امام حسین علیه السلام به زهیر ابن غین و سعید ابن عبدالله هنفی امر کرد که با نصف کسانی که باقی مانده بودند به ترتیب نماز خوف پیش روی آن حضرت بیستند آنگاه امام حسین علیه السلام با سایر اصحاب نماز خود را خواند. در این هنگام تیری به طرف حسین علیه السلام آمد سید ابن عبدالله به پیش آمد و خود را سپر حسین علیه السلام نمود و همچنان استوار ایستاد و تیرها را به جان خرید تا اینکه او بر اثر شدت جراحات تیرها به زمین افتاد و در این حال می گفت خدایا این دشمنان را به لعنتی که بر قوم عاد و سمود کرده ای لعنت کن خدایا سلام مرا به پیام برد برسان و از درد هایی که بر اثر تیرها به من رسید به آن حضرت خبر بده چرا که من پاداش تو را در یاری زردیه پیام برد سپس به شهادت رسید رزوان خدا بر او باد در بدن او سیزده چوبه تیر غیر از جراحات شمشیرها و نیزه ها دیده شد شهادت قهرمانانه سوید ابن عمر سپس سوید پسر عمر ابی عبیموتا که از راد مردان با شخصیت بود و بسیار با نماز اونس داشت به میدان شتافت و همچون شیر دلاور با دشمن جنگید و در برابر زخم های سنگین و بسیاری که بر بدنش وارد شده بود نهایت مقاومت و صبر را نمود تا اینکه با بدن پر از زخم در میان کشتگان افتاد و همچنان بیهوش افتاده بود تا اینکه به هوش آمد و شنید میگویند حسین علیه السلام کشته شد با زحمت زیاد برخواست و از میان کفشش چاقویی را که پنهان کرده بود بیرون آورد و با همان با دشمنان جنگید تا به شهادت رسید رزوان خدا برو یاران حسین علیه السلام برای کشته شدن به سوی جنگ می شتافتند و از هم دیگر سبقت می گرفتند آنگونه بودند که در وصف آنها چنین گفته شده آنان کسانی هستند که هرگاه برای دفع گرفتاری خانده شوند در برابر دشمنانی که گروهی از آنها نیزدار و گروه دیگر در صفف فشرده با اسلحه آماده شده اند دلهای خود را بر روی زره ها و جان بر کف و شتابان به سوی نصار جان می روند.